اما مواضع الوصل اما جایگاه وصل که چه جاهایی باید وصل کرد قبل از امثله بیا روی قاعده 64 کتاب يجب الوصل بین الجملتين في ثلاثتی مواضعه واجب است وصل بین دو جمله در چند جا؟ در سی جا. همان طور که اونجا گفته بود واجب است فاصل در سجا اینجا هم بگه واجب است واصل در سجا یک اذا قصدا اشراکوهما فی الحکم الاعرابی زمانی که قصد بشه مشترک بودن اون دو جمله شریک کردن اون دو جمله در چی؟ در حکم اعرابی اعراب اعراب نحفی منظور ایراب بحثه؟ نه شما میخواهید هر دو جمله رو الهاز ایرابی یکی بکنیم با ایدت تفقتا خبرن او انشان جایگاه دوم که واجب است وصل زمانی که از زیاد خبر یا انشاع با هم دیگه چی بودند؟ یکی بودند زمانی که دو جمله از لحاظ خبر یا انشاء هم بودن؟ یکی بودن. یعنی هر دوتا خبر بودن یا انشای بودن. و کانت ادامش بینه همه مناسبتون تمه و بین اون دو جمله خبری یا انشایی چی بود؟ مناسبت بود. و لمیكن هناك سبب یقتد الفصل بینه همه و سببی که اقتضای فصل بکند وجود نداشت. و همچنین سببی که اقتضا بکن آقا اینا رو نباد وصل کرد وجود نداشت و سبب جایی که وصل واجب است اذا اختلافا خبرن و انشاعن زمانی که با هم دیگر از جهت خبریه بودن و انشاعیه بودن با هم چه داشتن؟ فرق داشتن یعنی یکی خبریه بود دیگری چی بود؟ انشاعیه یا اولی انشایی بود و دیگری خبری از این جهت با هم دیگه چه داشتن؟ فرق داشتن و همچنین ادامه جمله و اوهم الفصل و خلاف المقصود و اگر اومدیم و فصل کردیم خلاف اون مقصد گوینده توهم بشه فهمیده بشه پس حالت سومه اینه که از دو جمله لحاظ خبر و این یعنی با هم چی داشتن فرق داشتن و اگر گوینده اومد و فصلشون کرد شما بر خلاف مقصدش جمله رو چیکار میکنی؟ میفهمی اینجا دیگه گوینده میاد چکار میکنه وصلش میکنه گوینده میاد چکار میکنه مثالش خیلی ساده است اتفاق مال اینا هر ستا بیاد در الأمثلة قال أبو العلاء المعری وحب العيش أقبد كل حر وعلم صاغبا اکل المرار میگه و دوست داشتن زندگی برده میگرداند هر آزادهای را و صاغبا و یاد میدهد گشنه را خوردن تلخیجات را منظورش اینه که امسانی رو که ناچار هست به تحمل هر گونه سختی و ازیتی وایش میداره اجبارش میکنه متوجه معن... لازم معنایی؟ و حب اعبد کل حرن و دوست داشتن زندگانی برده میکند هر آزادی زندگی رو زندگی ک... یاد بله. و همچنین یادش میده که تمام سختی ها رو چکار بکنه تحملشون بکنه خب اینجا در این دو مثال میبینی که هر دو تا خبر هستند متوجه شدی؟ مگه اینجا خوب مبتدا نیست؟ وحب خوب بلعش عشق مضافون اعبد کل حرین اعبد فعل ماضی فائلش هوی هست که بحب كل به بر برمیگرده کل مفعول بهی خور مضافون در این مثال ما اعبد کل خرن جمله خبر واقع شده خبر ما از نوعی است هست؟ جمله هست اینجا هم حرف عطف علم ساغبن معطوف به اعبد کل خرن پس اینجا خاصه که اللحاز حکم اعرابی چکارشون کنه؟ دومی رو با اولی چکار بکنه؟ شریک بکنه خب د دقت كون در مثال عادي وقاله ابو الطيب وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي اليه شراب. بگ سر در نظمن جایگاهی داره که ندیم ندیم اون دوست رو میگن که انسان باش خیلی خاصة مثل دو موطاد مثل ندیمون دوست شرابخارو میگن دو دوست اونایی که بخاطر شراب با هم دیگه مینشینند بشون میگن ندیم میگه ولی سر منی موضعون ندیم ندیمون ولا یفضی ایلیه شراب سر در نازمان جایگاهی داره که ندیم هم نمیتونه اونو بهش پی ببره این حتی ندیم هم نمیتونه اون سر رو چکار بکنه داره میگه که من چه انسان سرداری هستم ولا یفضی ایلیه شراب و شراب هم نمیتونه سبب فاش شدنش بشه خوب در این مثال در این مثال باز هم بحث ایراب هست باز هم بحث چه اگر دقت داشته باشی بیا روی جمله ولی سر منی موضعان موضعان چه هست نه منظور معرفه است یا نکره نکره هست دیگه ولی سر منی رو میگن الازم اعرف نکره بعله خوب ببین ما یا قائده تو نحف داریم اگر جملي بعد از نکره بیاد صفت واقع میشه مانند خوذ من اموالهم صداقتا تطهیرهم صداقتا نکر است پس تطهیر مشتیش صفتش انجا هم ولسر مني موضع جملة اسمية هست موضع نكره هست لا يناله نديم این جملة میشه صفتش این جملة میشه کیش حرفه مافه ستاش جمله خود جمله صفته جمله لا محل لها من الاعراب چی میگم محلنه مرفوع یک کلمه نه کل جمله خوب بعدش می بینیم که واب آورده وَلَا يُفضِي میخواد که همانطور که لا يناله ندیمون این جمله وصف برای موضع ولا یفضی إِلَيْهِ شراب هم چیه؟ وصف برای موضع بله؟ پس اون هم صفتش این اینو هم چیکار کرده؟ صفتش قرار داده بله عطفش داده دار حكم البته دار چي معطوف عليه بعد معطوف حالا دقت كن در بيت بعدي وقال يشمر للوجئ أَنْسَاقِهِ وَيَغْمُرُهُ الْمَوْجُ الموج في الساحل ميگه لباسش رو برای اینکه در کجا بره تو آب عمیق برای لج جای جا که آب زیاده ها میبینی شلوار رو میزنن بالا اینو میگن تشمیر جمع کردن ساق تشمیر تیکه از پاپوش چیز از دستت باله بله میگه لباسش رو جمع میکنه که به بر کجا بره در حالی که رو در ساحل میگوشونه خب این یک ضرب المثل در ادبیات عرب کسی که از کار از عهده کار کوچک برنیاد ولی اهداف خیلی آرزوهای خیلی بزرگی داره ها نمیتونه مثلا برای خودش پفکی بخره و مثلا دنبال اینه که مثلا میگم یه ویده چرخی بخره مثلا یه کار کوچکی رو نمیتونه انجام بده دنبال کار بزرگ. میش میگه آقا این داره برای توی دریا رفتن خودشو آماده میکنه در حالی که اینجا بغل ساحل گیره. ها؟ زورش با موج زورش با بله زورش با, با موج ساحل نمیرسه. ولی عرضو داره کجا بره در امقه آب بره خوب یعنی در بله خب اینجا اینجا اگر دقت کنی علتی که اینجا بین اینا وصل شده بین اون رو که توضیح دادیم اما ایلتی اینجا حرف عطف اومده و یغمروه الموجو واب اومده علتش میگه است که اللحاز خبر بودن و اللحاز انشابودن با هم چی هن؟ یکی چطوری؟ یو شمی رو لیلو جمله خبریه هست؟ یغمروه الموجو فی الساحل باز هن؟ جمله چی هست؟ خبریه هست بale بله. واللهاظه معنایی هم با هم دیگه چه دارند و واللهاظه معنایی هم با هم دیگه مناسبت دارند. و سببی که هم اینجا اقتضای فصل بکنه وجود نداره به این خاطر دومی عطف شده بر اولی یعنی خبر باشه هر دو تا جمله هست یا این که هر دو تا خبری باشن یا این که هر دو تا انشایی اینجا هر دو تا چی هستن خبری خبری حسند. بعدش واللهاظه معنایی هم با هم دیگه مناسبت دارند موضوع یک چیزه سه شد دو با هم باید بشه نه مناسبات داشتند تا خوزایی فصل نباشد. بله. اما واقال بشر ابن برد و ادنی إلى القرب المقرب نفسه ولا تشهد الشورا أمرا إمرا غير قاتلي بگه نزدیک کن به خودت کسی رو که با عقل و کمالش به تو نزدیک میشه و حاضر نکن در مشورت شخصی را که سرپوش نیست سر رو نمی پوشد متوجه جمله شده ای؟ این سبب اگر نفسه و ادني الى القربه المقربه نفسه بعد المقرب نفسه بعد خوب اسم فاعله اگه بگیم مقرب دیگه میشه اسم مفعول که خراب میشه خوب در اینجا دقت داشته باش میگه که هر دو تا جمله اینجا چه هستن انشایی هستن ادنی فعل امر از ادنایودنی ادنا که فعل امر در باب افعال همزش فتحه داره ولی از اون جایی که این ناقصه حرف اله چه شده؟ در اصل از تودنی هست تودنی نزیک میکنی ادنی نزیک بکن پس ادنی جمله چه هست؟ انشایه هست لاتو شد هم چه هست؟ خب میگه این دوتا جمله؟ اللحاز این بودن با هم دیگه چه هستند؟ یکی هستند؟ اللحاز معنا با هم دیگه مناسبت دارند؟ آه؟ اللحاز معنا با هم دیگه مناسبت دارند؟ معنی, دیم چه چه؟ معنی بیت مصره رو؟ خب و لتوشید شورا ان غیر کاتمه و حاضر نکن در مشورت در شورا شخصی را که راز نمی پوشد نزدیک کن به خودتون کسی رو که با عقل و کمال به تو نزدیک میشه و مشوره نده جلوی کسی که سر نمی بوشن پس اینا الهاز انشایی هر اونتا انشا هستن الهاز معنا بینشون مناسبت وجود داره و سببی که اقتضای فصل هم بکنه وجود نداره اما مثال براي قسمتها زمان اذا اختلف خبرا و انشاءان و اوهم الفصل خلاف المقصود دو مثال براساور ده مثال 5 و 6 انجا دقاء داشته باش و بارك الله فيك لا و بارك الله فيك لا و بارك الله فيك در المثال در المثال اگر دقاء داشته باش خلی چیز قشنگی ميگه ميگه انجا در جواب شخصی که به شما گفته هلک حاجتون اصاعدو که فی قضایها این نیازی داری که کمکت کنم در برابرده کردنش تو چی میگی؟ اگه تو بیای بگی لا بارک الله فیک اینجا اه برخلاف اون مقصد برخلاف مقصدت اون چیزی دیگه میفهمه لا بارک الله فیک مجبور که اینجا چی بیاری؟ بگی لا نیازی ندارم که کمک کنی و بارک الله فیک. <تصفح> بله و بارک الله فیک. متوجه شدی اینجا؟ چرا؟ خب توضیح دادم برای چون اگر شما اینجا واونه یاری بر خلاف مقصود فهمیده میشه. بر خلاف مقصد چی میشه؟ فهمیده میشه. توضیح دادم. شخص به شما میگه آ نیازی داری در برابر در کردن نیازت کمکت کنم اگه تو بگی نه بارک الله و فیک وابو نیاری خب معنیش میشه؟, میشه لا بارک الله و فیک برخلاف مقصد میشه دیگه لذا باید اینجا بعد از لا چی بیاری آه. واب اما در شماره شش و لطف الله به این لطف کردن خدا هم اگر شخصی به شما بگه هل ابل اخوک من علته هل ابل اخوک من آیا برادرت از اون مریضیش خوب شد شفا حاصل کرد اگر تو بگی لا لطف الله به مثل اون داستان قبلی میشه باید بگی لا و لطف الله به اینجا دیگه دعا به میشه ولی اگر وابا اون دعا رو بر علیه خودش میشه اون موقع دعا رو چکار کار خیلی چیز قشنگی بود اتفاقا